ششنه. و چون ما الان دریمان این که تشازان رو نمی شنسیم استاد من نجاشی دریمانه چون بگیم اون چی که ایشون به نجاشی دادن چی بوده احتمال داره فیضرست باشه ظاهرش به اجازه بیشتر میکاره. کاره احتمالا کتب از ها رو اجازه داده به من بوده نجاشی قدرتان فیضرستی که تایی باشه فیضرست رواز خودش رو به کتاب میریسه فکر این طوره. اجازه نه مثلایی که شخص نشتایی که شخص یک شخص ماهیان میریسه و بگیر شما از این شاخر از به زمین یا کار نشازان اجازه چون شد چون به هرمان ما هیچ شنافی از یا نشازان نداریم همین مقدار که اون نگاشیم در ادهی از مبارد ازشون کرده دیگه بیشدین آشنایی نداریم. اطار هم از کردیم ایشون احمد اطار پسر محمد ابن یحیا محمد ابن یحیا استاد کلینی نیست. این پسر احمد ابن محمد ابن یحیا استاد صدور هم از نشده خب اینجوری گفتن ازدهی اولین باری که در شیعه از زیرون توصیح شد توصیح رسمی نه ها خود درست با کنیم گفت باشن سیده اما اصلا حدیثی که در سرن شبوده بگن سریحان علامه است چون دیدون توضیحی داده که شعید ثانی بعد گفتم که توضیح تو من بود، این که فراموش شده بودن اما علامه را توضیح نداده فقط حدیثی که درش بوده گفتن سریحان بعدها شیلستانی ایشون تصفیح کرد تصفیح سه هزه و ساله هست صراحه هم ایشون رو توصیح کرد ممون شیلستانی الله محصر با از کلیه بابی باز کرد که مشایخ اجازه احتیاج توصیه ندارد با عنوانی که ایشون دازم اجازه هست ایشون رو توصیح کرد این هم کبراش هم سغراش یعنی آزه سقراشم به ذهنم آزده سقابو دنیایان برموی خیلی احترکب که من میزم شهیستانی قرده هم بزنم احمد محمدم برده به نظر میتونید که تصریح میکنه به وساقتی ایشون این را انه لهمیدی که از بزرگان اصحاب قوم عبدالله ابن جعفر انه حسن به موسی خشان انهو از گیاسبن کلو ظاهرم اجازه ابن شازان به مرموم شیخ نجرسی داشت بر مر پس شد که این کتاب رو مرموم نجرسی اجازهش داشتن اما با اینکه ایشون بحضاد بودن من به علمای بحضاد من که این میشنن و علاوه کوفه یا خوب و مرموم نجرسی راهی که ما امراه به شنگی اگر کل روی کتاب نجرسی شیخ رو این ترکیبی که هستون دارم ترمیه بکنیش کشنگ مثال نجاشی وحزادیه ابن شازان قرطزمینی است که رو به حزاد قومیه امروزا ابن جهر قومیه حسن ابن موسف فشا کوفیه اون آقای بعدی هم بیاراتو نکردون هم پس بس نجاشی به تحمل کتاب میاد قوم از قوم بیره محکوفه این نحوه از این که کتاب هایی رو بایات ها از لحاظ تاریخی و جغرافیایی، هایی سیر تاریخیش واضح باشه به نظر ما خیلی معصبه خیلی تاثیر قوی داره این مثل این که چیزه بر فکر میکنم شاید یک سرون یا نصف میراس های نجوشی باشه از قومه خیلی اختبه با میدنم عجیب با ما که خود ایما بایی در بردار بودن و نمیدیگی کوفه بودن یا نرفتم کوفه اونا شده یا من نمیدونم این راکه به سند مرحوم نجاشی که انصافا واضحه و ابهام تاریخی نداره و قالت شیخ رحمه الله یاسبن کلوب تیهست بجلی که بیشترش بجلی خونده میشه نسبه از بجیله نسبه یه اشیده ای محروفی بود در اونجا و این اصابه اونو شخصیت ده لبون کتابون انه اصحابه من اممار ببینید شیخ در اینجا اصحابه هم دقیق تر نجرشی عمل کرده لبون کتابون انه اصحابه من اممار شیخ در اینجا میخواد یک کتاب مال خودش نیست مال اصحابه من امماره پس این رو خوب دقت کنیم چون آیان گازلگی مثلا یا بنجاشی حمله می‌کنه یا به شیخ حمله بکنن مثلا شیخ تو اینجوری گفته نجاشی نه یا به میات چون که نافی شیخو فیشو هم حمله نمی‌شه نمی‌کنه یعنی این هر این نکته اساسیش اختلاف مصدره این آیان ما ترجمه نمی‌کنه مرحوم نجاشی تاریخش به این کتاب ابن شازان در اون اجازه کتاب رو به خود این آقای به اصطلاح خیاس بسید دارم اما شیخ توصی این طور میگه اخبر نابیه ابو عبدالله مفید اون ابو عبدالله شاز... ابن شازان قزمینی بود این ابو عبدالله شیخ مفیده اخبر نابیه ابو عبدالله مفید رحمه الله ان محمد ابن علی ابن حسین خودیشان و مفید بردادی هست ایشان از محمد نحریه نروسه محمد نحریه نروسه محمود صدوق پسنه از مفید میره به صدوق این هم من توضیح دادم مفید به قوم نیامده صدوق دو سفر به بغداد میره به نظرم که این که دابا نمیشته باشه یک سفر سیزار پنج و دو سه سفر پنج و چار دو سفر این سفر متوارد به بغداد میره محمود شیخ صدوق به صدوق پسنه اصلا اون وقتا مفید نسبتا جوان بوده مرموم شیخ مفید اجازه از صدوق میگیره ولی دار این یکی از راه های خیلط برداری ها به قومه یکی از راه پس نجاشی یک راه ارتباطی بایدیه داره به اون ابن شازان هرزینیست شیخ راه خیلط داره اون شیخ مفید از مرموم سرور این راه دیگری که شیخ توسی داره و چون مرمون شیخ صدوق کتابی به نام فهرست داره این احتمال هست که این از کتاب فهرست صدوق باشه احتمال شد در حده احتمال و این کتاب کتاب معتبری بود شیخ صدوق شیخ محدثی که زمانه شیخ قومی مردسی ها روزو باید و شیخ صدوق غیر نشیخه من شیخه ایشان غیل از فهرستی این دوست ما هم اشتباه همه ایشون فهرستی هم داشته مرحوم شیخه مو صدور پس همقل این اجازه شیخ توسی به این صورته چون شواهد که ما الان در دست داریم مرحوم شیخه موید که فهرست ایشون نصفر داده نشده نه که ما نداریم نصفر داده نشده و لذا به احتمال بسیار بسیار قبی این هم اجازه است به شیخ رتوسی چون ما زابطه شد چند بار اخیرم هم کردیم کتاب های بر بردو اساس ناشته شده یا اجازه از یا پهاله است پس آنچه که مرحوم شیخ مفید داشتن ظاهرا یک اجازه به نجاشی دادن یکی هم به شیخ رتوسی مرحوم شیخ توتی به هم اجازه به شیخ طوسی دادم هم اجازه به مرحوم نجاهی دادم. اینجا می‌بینید چرا مرحوم نجاهی تو اجازه ایشان نبرده؟ چرا که نمی‌دونید مرحوم مفیذ از مرحوم شیخ نجاهی از شیخ طوسی جدا میشه. پس شیخ طوسی از راه شیخ مفید میره به از شیخ طوسی شیخ صدوق همه از پدرشن از ابن الولی میره به صدوق عبدالله اخبر مبیه ابو عبدالله المفید رحمه الله ان محمد ابن علی ابن حسین که مراد شیخ صدوقه ان ابی و محمد ابن حسن ابی که صدوق پدره و محمد ابن حسن هم ابن الولی به استادیشان جمیعا ان سعید سر سع صدوق عبدالله عنه اسلفتن موسی عن قیاس ابن عن این سندی که اینجا اومده بین همین سند سلاسل روایت داریم. پس بنابراین مرحوم شیخ مفید طریق وی اجازه است از طب شیخ طوسی غیر از نجاشی است این احتمال به نظر ما الان خیلی عادیه ی مرقوم شیخ به حسب اجازه ای که داشته اینجوری تشخیص داده که کتاب مال خود بیاتی نیست کتاب ان اصابع نه احماد هم. الان هم اونچه ما در روایت داریم خود مجموعه ما مکرر در 60 65 و 66 روشه 66 بشه اونچه که ما عرفان در روایت داریم همش همینطوره قیاس ان اساغه ابن ها تمام توش قیاد انصابه نرمان و ازدوساقه به ذهن میاد که این کلام دهید تر ازدوساقه نجاشی نجاشی کتاب رو خودا قیاس نسبت داده محبوم شیقت رسی بگردن قیاس قیاس کتاب نداره همون کتاب رو اصابه نرمان نداره قیاس انصابه نرمان اونی هم که ما داریم تماما به زون اصابه یعنی ما یک دارلگاه قیاس از غیر حساب به عمار نرویم بدون استثنا صددرصد هم همینطوره گوش هست خاصا بر این این گاهی گفته میشه که مثلا نجاشی اشتباه کرده یا اشتباه کرده در دو مصدر بوده در هر مصدری یک جور بوده در اجازه ابن شازان غزنی کتاب ما ال ریاض بوده در اجازه شیخ مفید کتاب ما در اطواقه نه ماروده طبعا اگر در هم بین این دو طریق بشه طریق شیخ مفید اونسن سر براده چون خود شیخ مفید بابداریات با ابن شازان عدویلی نیست شیخ و فی زمانه و نگه این طریق شیخ دوسری به نظر قبیتر میاد و سکیتر میاد و واقع خارجی هم کلامیشان بهتر دیدن بعد می کنم به عذر و فی رجالی فی ملن یر برنمان علیه وسلام قائلا قیاسب نکلوب نفیح عزیز بجلی و واقعا سفار اسم قیاسب نکلوب رو گردن چون مرموشه توسی رجالی شه به حسابه مثلا بابون فیمارا و انرسولال بابون من را و انعبی من را و ان حسن و حسن آخری بابشم بابون من لم یرده من من نکرده البته این ایک شرعی هم حال عمومی من خوب نیست جا که این توضیح من عرض رو که ظاهرن مرایدیشون من لم یرده از ادراک کرده باشه نکرده باشه چون برید نیست که اضران ای که این که کم سرده جواب از تفاقی و از تفاقی رو در کرده باشه باید که محضاز شیفتوسی ایشون جزو من نمیه به چرا؟ چون ایشون روایت از امام نداره اون چی که داره منحصه روی طاقب نرماره از امام رو باید نداره اصلا نمیه به ایمان نه اینکه که لمیو داره که زمانه ها بعدم فهمنم رواهن ها سفار سفار از ایشان نرکه بعد آیفوی کنم ویده کرد شیخ قدره این نبو قدر آمه عمل از و اخباره اذا لم لهم له لها معارضون من طریق الحق اگر معارضون شبه شبه اعمل میکنن بعد آیفوی ازتظار برموده اصل که مثلا با مرومعقف سریع بروده وید اما به مجموعه کلامه عمله و خبر منی و خالفه حقی مشروط رو به احناس رساقت دیدیم هم که به یه تکتار بکنیم ف تحبول دیگه و علیه فریوه کن به رساقت قیاسب کلوم و آمیه این هم مثلیست که آقای و جاوشم روچن شدید درستی. بعد بعدی اوناشی و که باید از چون گفت خیاسه بسره و انها ایشون که وزار انده ها من سحبا سحب من قلم شریک خواست که آدمان ایشان باشه امان شاگرده باشه بس لجنه رجالی این مطلب درست نیست. سفار از ایشان نرمه کرده که ایشان به استدام استاد سفاره که حسن موسیقی خشاق باشه لیکن چون هم دقیق بوده این احتمال هست که شیخ یک روایت دیده اینطوره بودن سفار هم رو نکرده بود ایشون برداشته او احتمال هم شد سفت کرده که بعد مراجعه کنه به هر حال اگر اینطور باشه یعنی شیخ در یک کتاب حدیثی یه حدیثی دیده نمیشته در از اون نکرده بود این بود که اما که اون نصف غلطیده آبا یاد سه من قدمه شری یا یک روایت دیده. دیده یه حالی که رو دیشون دیده همینطور بوده حالی ندرشتن باید کنیز بردگی که قالم بیا حالی ندرشتن که بینیویسن که اینجا رو باید دیگه اینه به همون حالت موجودش نمید کردن که اوش بعد نظر دنه لقدر میفهمید و روشن شد که این مطلع رو هم مطلع در درست یعنی این کاری رو که شیخ رمیده یک کاش نزدن هستی این طور که آقاوی اندرشدن شمایدن انسان قدید که ستبار از این قیاس نرم از حسن ابن موسای حشاد در این راجبه تا اینجا ما یه شرقی از این شرق داده شد و من از کردم که خواه های رجالی و فهندستی چه نوشته شد هر دو فهندست ما اجازه داشتن یکی اجازه ابن شازان قدمینی اجازه شده عندو سه دوران هم به این ظاهرا اجازه مفید بهتره ظاهرا هم اسهق او اوزه و اجازه ایشان به ذهن مفید. اجازه مفید رو صاحب خوندین محمد ابن به ابن حسین و محمد بن حسن که مراد چیز باشه مرحوم بنظری باشه ان در صد چرا از اثر متخشب شد اون نه هواسر چیز و این دوتا رو که با هم مقایسه بکنید خوب دقت کنید معلوم میشه مرحوم نجاشی نسخه ای مال استعمال الهیری بن حسن موسرخشاب. طریبتون هر دو بر حسن بر میگرده. دو تا از بزرگان یکی یکی سعده عبدالله یکی همیاری هر از بزرگان هم. طریق شیخ توسی اجازه شیخ توسی که از داره شیخ مفیده به سرک میخوره سعده عبدالله و طریق مرمومه نجاشی به همیاری میخوره عبدالله هم همیاری همیاری روشن شد اینا این دو تا حگا از بزرگان ما هستند هم همیری هم سعد بن عبد در کتب شیخ طوسی در تنبیه اینها ایده روایت داره که آیه به اشاره فرنده ایشان هم همین روایتی که در باب حد ساحر داریم ایده روایت داریم در کتاب تنبیه میگه محمد بن الحسن سفار عن الخشیا تا چه چیز است کتابشون ها میان این کتاب سه تا همه این مزرگان رو بود. یکی همیاری، یکی سردن عبدالله و یکی هم غربون در اجازه اون دو نفر در طور روایات سفار مرمو کلیم چند مورد داره کلیم کم داره بود نظر صدو کلن دو تازاره از قیاسه بود کلیم پفش رو هستنده در یا چلو چه... خورده این مرموم شیخ صدوب توتی داره این دو بزرگوار از این قیاسه نکردون خیلی کمره من رو کلیه که نرمو از کتاب نواقه رویجه که نرمو کنه محمد ابن احمد ابن یعیا باشن شد برنام چهار نفر همه از بزرگان و هر چهار داشته و ما دیگه الان یک دونه روایت واحد در می‌آید و که دیکه یکیه خیلی عظیم داره. اون چه که ما از حسن نبوی خشاب داریم، این چهار تا بزرگواره کم نمی‌کنند. خلاصه بود، چون نوع خلاصه این مرد وقتی شن صبر کرد، خلاصه کرد. یک اصحاب نعمه زوایایی است که اینها همه مثل همون سنانگذار و, و احکامه، و آن عادیه، آن آقا، این آن علیا غار غار رسول. به این سنری که از آن شاید از دیگه مثلا این حیث المجموع بین به پنجاه تا باید دفع کردیم 50 تا باید بیمیزن این از اصحاب نعمار از بزرگان اصحاب ما کسی چین چیزه ما از مانساعده و بعد از اصحاب نعمار هم که یک شفقت بزرگی اصحاب نعمار خیلی رایی داره چون اصحاب نعمار هم مرد جای و قندی هم هم خاندان جای و هم به اشتلاح گفت که هر جنگری از یا پول یا پروه اهل پولم بوده اصحار. چون است نرمان سروا بوده سیرتی بوده و در همین کتاب رو محل دکان صرافیش مقابل باب فیل هست باب بزرگ محیز کوفه نزدیک مسجد کوفه بوده محل صرافیش هم اونجا بوده و یکی از شخصیت شی در پروفه حساب میشده؟ حساب ابن عمال هم تو بعض در بغایت مالی نخش داره به خاطر همین نقش طرافی و واسطه گردیست که ایشان داشته یه شخصیت فوق عادهی کنید حساب ابن عمال کمی نیست و روایت افراد متعددی هم تو سوزیت برسول ابن عمال نشون نمی کنه حضورتان علیشون نمی کنه سفوان ابن عمال تاكيد این روایات رو خوب دقت ای که ان جعر فرتن حبینا فقط سیاست در قلوب نه آموزش خیلی دلسته. این روایات رو که در صوره در ما ان, ان, ان فقط سیاست در قلوب این همه بزرگان ما داشتی و اینش کنه این حدای کجای کار خراب داره من نمیدونن من خدا درمونی فهمه کجای کار حرامی داره این امتراض رو دفت کردی اصحابه نمار در میان ها ما این مستو فقط ایشون نماریم هیچ نفره نیست که زوانه نمار میکنه درمان هجاج رو نمار میکنه زیادی از بزرگان ده. پس اینها در میان شیعه منحسر از به اصحاب نعمار. این اسناد. از اصحاب ابن عمارم منحسرم قیاسب کلوب سنی نحروب کنه چمچمان بعد از اینکه خودش گذاشت این حاله قیاسب کلوب رو اصحاب اصحاب گرفته بعد اینا برای قاعده کلی که دست خودشون بوده که کل که ایمان صادق و به اصنادهی عن نبیه، عن رسول الله و ما نخود از آب که از شما نسبت جام کی؟ جامی سال ساله کلی راست امام بوده شما قائد و جیات راست کوده امام کی نبودن؟ قائد کلی. اگر این دو کارو نکردند. اصلا دو شاید می‌بینیم که یه زمان یه حدیثی گفتی کوده چه قان بود. کوین دروغ می‌گی اسمم با یک نخیمون دل ما خوبیت خدا رحمتشون عالیه امروز جایی بود که این خوبی هم دارن و تازه دست اوکراینمون اطاحو دارند بیاد یه اشکال کرد ایا دوم خدا ایشون با و شاق و دوم نداره خب هم <متصورت> <برد> <متصورت> که اصناد قرار رو دوست وضع دیدیم نمیشه نمیشه قیاسب نکرد رو برس اطاقا نداره این مختل رو این مرد رو, رو هم محطنا کسی دیگه نرمه گرده نه سند رو کسی دیگه قیاسب نکرد رو نرمه کن نه محط خیلی عجیبه یعنی واقعا انسان تعجب میکنه یاسر بن کزوب قیر از این چه که, که از اصحاب نار کرده هیچ شخصیتی جداگانه تو کوفه نداره یعنی ما مثلا یاسر دو تا دیگه روز قیل از این تکیه ها جدا تمام شخصیت اجتماعی بن همین حدود باید نیست که از اصحاب معمار ان جعفر ان عبید دیگه چیزی سرکونی داشتی رو از دیازونیوم بسند شو کتاب دیگه هم بود اما از دیازونیوم کردیم دیگه قیاده از هم روايات نداریم دوستان تو این سه بچه رو دوست دارم از دیازونیوم کردیم هم اونیکه ما داریم فقط خشاب نهرو کناره یک دنر ولاد در مزونه این شانس هست که یعقوب نمیدیده برداری یک گونه تمام رو فقط خشاب نه خب ما این همه در خوبه شخصیت داشتیم اینا بیان از یاسب نکرلون نهارو بکنن اون هم نهارو خودش کشکا هم که نهارو بکنن احادیثی البته ولی ما دیگه الان به این نتیجه دستیم که اونچه چه از فقط کتابه معلوم سیشون احادیث داشتون به خلاف او سکم میگه یکی کتاب داره یکی احادیث داره که هر دو داره معلوم نیست الان اون چی که ما اون چی که در سندشتی یاسدن کلبه قیلی در کتاب چیزی دیگری باشه منحصره در کتاب از حسن نوسای حشب هم نهل بغداد نهل کوفه. از حشب منحصره چهارت از مشاعث ها کنقه میکنن ولی من نمیدارم چون ما احتمالا رده به بغداد داشتن به کوفه داشتن هایی پیشون به ما آمده یا صدفتاً این چهار نفر که آمده در سفرهای کرده از مرموم خشا این کتاب رو این آثار علمی رو نردی این چهارتا رو مرمان برازون گفتیم یکی همیاری در اجازه شیخ نجاشی تو اجازاته یکی مرموم سعدل در این توی اجازه شعر توسیست یکی صفوار این غالبا تو روایات شهر توسیه صحفاره. یکی هم محمد احمد این هم تو روایات کنه شاید تو روایات شهر باشه چند شهر باشه این مشایخی هستن که از این آنه همه قومی هستن و احمد اشعری که یده اجنای شهنه را ایشون نیست مثلا فرصه امثال ابن و سببانو حسین مسئلی در هیچ قسمت دیگه نه. روایات نیستن چه از چه بعد از اصحاب در این قسمت نیست لذا خیلی همچین وقت عجیبی با خیاس سر کلون برکر میتونه. و سر عمل اومیه و تحمل اومیه ها برای این کتاب نمیدونیم سرش نمیدونیم در فرصه مثلا شفه کلینی را سفر قلدیشون آورده یا سعد بن عبد الله قلدیشون از زمان سعد بن که در حدود نیمه های قرن دومه مثلا سال 260 270 که سعد ما ماثریه رو تا 460 به شیخ فوسی یعنی دو قرن بعد شیخ فوسی به لمارومی ان صادره یه روایت میگه شبه همین امام و صالح فرم دادن بردم خادثتون لا تجدون حکم آفی ما روی انا یا فی ما روی انا فنزوله یا ما روی و یاده اصول یاسم کلدون به این بله در این دبسته یاسم کلدون سن منطقی به عمر مهمی میشه لیکن این تقبیر لا تجدون حکم مافی ما روی انا فی ما روی انا فی ما خب اینجا که اسم اصابه نعمار هست اشیه هست از جبه از علمه هست از عربی بود در حال یه احتمالا شیخشون گروهیه لما رو جنسا احتمال در یک ذهنییتی در حال بوده که به امام صادق نسبت دارد اگر ما خود ما مطلب نداریم اینه که اینها بلو از طریق ما از عربی نمی بوده چه در عجیبه که فنان زولا اینجا به خوبصورت سک کنیم گرن سادر هر بزن اینکه بیه اصابه نمار هست اصابه نمار هست اصابه نمار هست اصابه نمار هست ذهنیتی در قوم آمده که امام سادر فروشون هست تحبلا نهگم زاهنگا یک طور بسید تنها راهی که ما الان برای ذهن بزرگان قوم داریم که بعد البته انس کردن در بزرگان قوم مثل محوم جناب صدر داریم دو تا حدیث رو نداشت کنند مرمون داریم 6 تا 7 تا با این سن یا 5 بیشترین قسمت از شیخ توسی اوله. اون که بخیر زیاده و اون برمیگرده به سطفان لیکن شیخ توسی عورده شیخ توسی هم از گزیرشی پس آن گزینشی گذیدشی اصحاب کردن در حقیقت پنشی شده در این مجموع و این روایتی در حبدالصاهره از اونه ایست که شیشتوسی منفردن ورده. نه سرون آورده و نکنه این خوش نه تو خیلی و تصادفاً این روایت مثلا اون روایت سکونی معروف به حبدالصاهره و این در مستعد زیدم هست علیه سجاب هن عبیه هن علیه عبی روسیم علیه قال حد و ساله رو کردید در اینجا در این روایتی که قیاس ابن کلیو ابرده حد و ساله رو قبل الا ای یکو این روایتن شیخ منفردن ابرده از کلیش شیخ همشون قائل برده خبر بوده از اولین که سیست که بحث کرده خب کتاب کتاب از پتواری که من روزه بیشون ابرده بیشون گذینشی نهار بردن میکرم میپشتره هم رد میکردن. اما اونی که برخورد کرده با کتاب برخورد گزینشی صدوق دو و معروض خود میگم پنش شد مثل کار کشک محمد و نحمد محمد من از خواب دارن خشی ها شد شیش به قرم این لذا به ما و توجیه هم که شیخ میکنه اینه این هم چون میگه رویه احتمالا در بینه علمای قوم و چیزی مفرح بوده که روایات مثل سکونی و وارد مثل قیاسم که منطقی میشه به در در برزشاره قابل قبوله برزشاره مثلا از شیعه رو نباشه مخالط با حتوای شیعه نباشه اصماح شیعه نباشه این ممکنی حاصل این صحبتی که در اینجا میشه کرد که چه تصدیق در تاریخ شهر طوسی هستن اجازه اجازه نه اما خب اجازه کتاب رو اجازه اما خب کتاب رو اجازه مثلا ممکن از کتاب اجازه گرفتی کتاب نه بود آه روشنگ داریش حالا مساله بیدی که همه از کردیم لذا با این مقدماتی که ما برای تون تصویر کردیم و حصول به این خیلی خیلی مشکل میشه خوه غلابه میشه. اصلا حصول حصول به کل ده وقتی یاسدن مشکل میشه چون از ما از یاسدن کلوب بگیر این عبارتی که از نگاشی و شیخ در فینتس در و شیخ در قده که چی دیگه نمیدونیم و به لحاظ روات اصحاب هم دیگه در کشرا و یک دانه روایت یعنی بود نیزی دیگه از کسی نرمی نمی کنه خود ایشون هم منحسان از اصابه نرمان این سنده عجیب قدید رو نرمی کنه چیز دیگه اصلا نداره کلن می با این ترکیب به نظر من خیلی روشن که اگر یک جایی بخوایم به روایت قیاسب نکلو عمل رو مثل مرمون صدویه مورد دو مورد که با خیلی تراغن و شبار دینا یک کاری کرد و این کاری که مرمون شیخ توسی فرمی چون مبنی بوده بر خودگیه بخبر و ادله از که بخبر اینجا رو نمیگید چونتا مرمون قیاسب نکلو درسته او خود قیاسب نکلو این راجع به روایت نکلو. پس نکلو پ این خلاصه بحث ما راجع به کلیه بحث پرد. حالا این دو کنه من بحث فرده شروع بخونیم که آفرده انشاءالله تبصیل بیشتر ما روایات رو خوندیم روایات حد صاحب رو متعرض شدیم از کردیم یکی از روایات که از دومت رو بپرد دو سریع میخونیم فرده خوندیم بحثاش پردیم یه روایت ساهر هست. از یو رو ذکر ده از صادره یل رو به سی مره حواله علو مرعسه این روایت رو از کل کلی آورده سندش هم ابهام داره ابهام حتی اسم داره یک طرف تیاره یک طرف يساره نه اینو میشوسید نه اونو شاید ممکن چه فردا بشه اسمش مختلف بود ان ابي به اسامه زین شهرها عبیر اسامه زید شمعان رو میشراسید اون اولشم محمد بن یعبی و محمد بن حسین و حبیر بن الاسن. خود این اولشم خرابی داریم باید یکیش هم باشه جا به جا شده اما این صحبتت چون قبلن گذرست من دیگه تکرار دفرم این حدیث است که مرموم از کلعیمی امردن و صدوق هم قرنه امردن بر هم شیخ سوسی از کلعیمی امرده باست خود. همین اول است که گیر داره خود نسخه شیخ صدوق هم طوسی هم گیر داره خود نسخه مرحوم شیخ طوسی هم خالی از ابهام و گیر نیست این راجع به این هست که یک ضربه رو سر وزنده بشه سر از کل نظر قانونی این خیطر نیست زدن ضربه به کلمه نهایت ممکن کلی کلهش محکم بود چشول بود چشینی بود خیلی قرار چند چیز اون شخصی که میزنه و این مریض بشه بیدفته تو خونه سی سال چه سال به حالت اعصابی بردن شده از خیلی انسجام قانونی توش نیست حالت قانونی نه یا. این راضیه به خود روایت این راضیه به تناسب قانونیش البته از, قانون، از در تاریخی لفیستر در اول اسلامی شد اما به اسلامی این یکی از است که مطرح بوده در کتاب در ادهی از کتاب احرسانت نمی جمعه در این که اصطحانشون سبیه ترمذی سانت ترمذی این حدیث آمده این حدیث در سانت ترمذی هست که اونجا اینجوریه اندر حسن بسری حسن بسری محروف انجندو قال رسول الله حد ساحل دو ساحل به سیف اونجا آمده در وقت از ترمذی چند کتاب دیگه شما آمده بردیت روی شهرت سیرازی در... یک رفیع آوازه، سی الترمزی، صوت الترمزی خوبی داره که وقتی روایات رو میاره، بعدا اشاره به برای روایات داره. مثلا یه روایت رو ذکر با میکنه، میگه در این ما هزارابی فلان، صابریه فلان و فلان روایاته. اون یه واژه به خود روایت بحث میکنه. که این روایت قابل قبول یا قابل نیست. این چه خوبی داره. یه چیزی میخوام که روایات بشم، مضمون کلام که خاصه چند سی الترمزی یا صوت الترمزی نگاه در اینجا جایشون این, جا این روازه از اسمایل از مسلم نه. این اسمایل مسلم ما هی اشتباه نشه این اسمایل مسلم حقه این اسمایل سکونی نیست بعد خود تردیزی میگه این حدیث گاهی اینجوری نرم میشه که جندو هر رسول الله گاهیم نرم میشه قابل دو که این کلام ماه جندو هست که ما رسول الله نیست و گاهی همه مختلف شد این کمان مال حسن بصری هستن مانو جندوق هم نیست اینه ترمیدی در فیل حدیث میگیرد در کتاب عبدالرزاق یا نبی شعبی میرود نمازه عبدالحسن البصری خال النبی از ترمی وقتی این یک مقدر ببالو من بر ما شعبه درست میکنم و من یک فکری باید در این بکنیم بعد یک روایات ما داریم حاجی از عیمه و سلام که حتی به حضر این انقراض در نصال زیادی زیاد نیست عجیبه مثل اون در کلمات حسن بسری میبینیم که بر ما تحقیق بابند به لحاد سمند و سال و رتب حسن بسری قرر دازم آموسا در قرر دازم آموسا خیلی عجیبه. یعنی این مطلب رو پرمزی حتی به خود حسن بسری نسبت این خواهی حسن وحسنی حد دو ساله زربتون بستهی بود در که دار ببینویش تکیه نسیار اینو هست حد دو رضا یک کلیم دو حسن از اون نویشتفن؟ نویشتفن من قصه جندوق در این جا حالی که این قصه جندوق این بعضی از مسائل فرحی گاهی صحنه سیاسی میشه این قصه جندوق بحث ساهر رو به سخنه سیاسی او. من از کارم جندوبون اون دفعه ایشان روزی در کوفه روز پیلو و که نماینده عثمان بود یه صاحبی بود که کاروها از جغلی که شکل سرگیمه چه بارده که از دهنیش بایده خارج گاوی بودی طوری. از این کارا می‌کرد. بعد جندوب ناره هست تو خونه و یک به این کشت این سرسده ایجاد کرد تا به عصمان رسید و عصمان رو گفت که زندان بکنن که این چرا مثلا آنو کشته بعد نه کردن که امیون رو گفت نه هم با جندوه اصلا درست بوده این اختلاف از اونجا این بحث شروع شد زمان و و حتی بعدها اهل سنت گفتن اصلا پیغمبر یک شمید در اصلا در زمان خودشون در عربی که بودن هی قدم میزنن اصلا جندو و ما جندو مثلا به همورد اسیم خودم از کتاب ابن هرم تاریخ دو جموندن این گاهی به حسن بسیل نسبت داده میشه گاهی به خود جندو بودی من دینام جندو رو از دین نسبت داده میشه گاهی هم به رسولله الله نسبت داده میشه باشن چه چیه؟ چی اوضایی داره؟ اونی که مثلا به همه حدیث اضافه الامل رو کرده حسن نسبت داده اوزه موتون خاص ما در باب احرام که انسان برسه باید روش نبوشونه از از امام موسیقی جعفن ام این از حسن باید کردن این از حسن بسیاری باید من به ذهنم آمده این اگر باز کشه این باز باید فکری برش که واقعا حسن بسیار در یا حسن از دیوندو حسن در بسیار بود جندم هم در کوفه بوده از کوفه مثلا خبر بوع رسیده خود پرمزی بیشتر مالی که این کلام جندمه نقل میکنه که برد از اون کلام حسنه میگه این اسمایل نسبت نسبه در کلامه سلطه ایشون ضدیبه قابل اعتماد نیست یعنی خود این حدیث در سطحه اسلامیش یک سطحه عجیبیه یعنی قسطه خاصیه تفرق میکنم و در سطح شیعه ایش هم یک سلح عجیب و غیبی در کافی صدو هم که کلن این روازه نارده مرموم شیخ تولیسی هم این روازه کافیه سلحش هم گیر داره پس به لحاظه به اصطلاح نکته فنی این حدیث اول هم یک سابقه عجیبی در میان اهل سنت داره هم در سنها و سنها